خدا صبحت امشب رو تحت عنوان شیعه شناسی شروع می کنیم که شیعه شناسی طبعا است و اسلامشناسی هم مستظمه اصلا شناخت اساسی و کلی دین و مذهب است دقیقت در این صحبت قرار هست که به طور خلاصه ولی اصولی یک تبین و جنبندی ایدولوژیکی ما از تشعیه اسلام و کلن فلسفه مصحب داشته باشیم تبین و تدوین ایدولوژیکی همطور که قبلا در موردش بسیار صحبت شده یک بحث حیاتی هست اصلا که در جامعه ما مدت هاست که خود این واژه ور افتاده و بلکه واجهی مزخود و مدعون هم هست مخصوصا در میانه روشند تکرهای دینی این واژه واژه مرتجانه مزخود میشه حالان که انسان بی در حیرت یک جانور هست اونتا خود ایدولوژی با تعریف نادرستی که داشته مضمون واقع شده ایدولوژی ما در قالب فرهنگ و معرفت اسلامی که بیاریم در حقیقت همون معرفت شناسی یا شناسی ما هستش همینطور که خود ایدولوژی در لغت هم به مفهوم ایده شناسی همان معرفت شناسی خواهد برخلاف تعریف قربی ایدولوژی که فقط متراتف است با یک بیانیه عملی و اجرایی مثل ورسکنه هرهای پنج ساله و پروژه های در سال و بیست ساله حالان که مفهوم حقیقی ایدولوژی بسیار بسیار از این نرف است این اصلا چرا نیاز هست به بست شیعه شناسی یا اسلامی شناسی خب این رو من فکر میکنم دیگه چندان اتیاد به تعریف نداشته باشه چرا که یکی از ویژیگی هایی ما و جامعه ما واقعا بحران خوبیت هست بحران ایدولوژی در حقیقت ما هم بحران شیعه داریم هم بحران اسلامی داریم که بحران مسیحی هم داریم در همه مذایب هست هم که بحران یهودی هم داریم یعنی در حال که بشر مدر مواجه با پوچی خوبیت های سنتی خود شده به همان میزان فطرتا نیازمند معنا و معنویت و مذهب امیقتر اساسیتر و برتری شده که به پاسخگوی حیات و هستی این انسان در اصل جدید باشه خب شیعه شناسی برمیگرده می‌گردد به اسلام شناسی ما بموانی شیعه این اعتقاد رو داریم که تشیع همان اسلام حقیقی و اسلام ناب است و فرق دیگه اسلامی اسلام های برحق و خالص نیستند، بلکه اسلام هایی هستند که در طول تاریخ تحریف شدن بنابراین مبایستی شناسی اون که همونطور که در تعریف ما میدونیم تشریب عنوانی مذهب دو هست بیشتر نداره عدل هست و امامت عدل در مفهوم عامش فقط به تشیع نیست ما میدونیم که در هیچ فرهنگ و مذهبی نیست که عدل از ارکان اعتقادی اون مذهب و مکتب نباشه بنابراین از تشیع آنچه که ریجه تشعیه باقی میمونه اماماتشه چون عدل رو دیگران هم دارن حداقل در عمومیت مفهوم در همه جا حضور مخصوص به در این جدید که عدل از ارکان همین مکاتب جدید بوده خب اگر تمام این جدید بر اساس عدل بنا شدند و با شعال عدل بنا شدند این خودش داله بر این حقیقت هست که تشیع دارای چرق تاریخی هست که عدل اصل اولش در حقیقت اصل عدل اول تشیع است که انسانی جدید بهش رسیده به تجربه بش رسیده. بس در حقیقت باز گفت مکاتب مدر مکاتب اومانیستی و انسانگره و مکاتب سوسیالیستی چند قرن اخیر به عادل بنا شدن در حقیقت با اسکو که اینا با اول اولیه تشریع رسیدن معنی دیگر اینه که انسان فطرتاً در طول تاریخ داره به اصول شیعه داره میرسه این یک دیگر از علل حقانیت مذهبی شیعه است برای شیعه و اما از دیدگاه مذاهب و مقاطع تطبیقی از جزو اصول مشترک اکثر مقاتل و مذاهب به حق است بنابراین آنچه که برای تشیع به عنوان اصل منحصر به فرض خود مکتب شیعه باقی میمونه چی هست؟ امامت بنابراین از یک گلاس شیعه شناسی جز امام شناسی است اگر ما معتقدیم که تشیع ما مغز اسلام هست معنیش اینه که بفهمیم که امام و امامت در کجای اسلام هست از کجای اسلام در اومده از کجای اسلام در اومده یعنی از کجای مذاهب الهی در اومده امامت از کجای دین در اومده اینو ما اگر بفهمیم تشریعه رو به عنوان نه یک فرقه بلکه به عنوان یک حقیقت تکاملی در تاریخ بمیدیم و اتفاقا هم اگر دقت کنیم که خیلی واضح است یکی از بزرگترین علل بحران هویت شیعی هم اتفاقا زیر سال رفتن همین معنای امام و امامت هست در جوابه شیعی از جمله در جامعه خودم به میزانی که معنای امام و امامت مختون شده زیر سال رفته در حقیقت هویت شیعی و هویت ایرانی زیر سوال رفته همونطور که واقعا رفته خب این به چه معنیه؟ این به این معنیه که اصلا هویت دینی و از دینی زیر سوال رفته چرا؟ برای این که برای ما دین یعنی تشیع تشاریویم یعنی امامت خب برای همین که این طبیعیه که برای یک شیعه بحران معنویت و دیگه خب برگردیم به یک رویکرد تاریخی الان اسمش رو فلسفه تاریخ بذاریم یا فلسفه تاریخ اسلام بذاریم یا فلسفه تاریخ مذاهب بگذاریم به زبان دیگر بهتر اون رو فلسفه و راز خلقت انسان بگذاریم چون اینجوری هست که مذهب و مکتبی میتونه خودش رو تعریف کنه به عنوان یک ایدولوژی جهانی و کامل اینجوری فقط میتونه یک مذهب خودش رو تعریف کنه چجوری؟ این که بتونه برای انسان و خلقت انسان در جهان و نظام هستی تعریفی داشته باشه که انسان در جهان هستی چیست؟ برای چی خرق شده؟ این اصل اول و امور مسائل دین و مصالح و معنویت هستیم. از جمله اسلام از جمله شامل. خب ببینید اگر ما بخویم بگردیم یعنی این مساله میشه هم از دیدگاه عقل بیش پرداخت و هم از دیدگاه نقل که باشه آیات، احادیث، روایات و های قدیم. و خب یک حدیث مشهوری در اسلام داریم به نقل از پیامبر اسلام که حدیثی متبرم هست که شیع و سنی قبولش داره که همین ممشنیدی و آن اینکه خداوند این کلام به نقل از خود خداوند هست خداوند میفرماید که چون من میخواستم که دوست داشتم که خود را معرفی کنم آشکار کنم لذا دست به کار خلقت جهان زدم و انسان رو به عنوان کامل ترین مخلوق به خودم مختص این امر قرار دادم مختص چه اینکه بتونم از طریق انسان خودم رو آشکار کنم بشناسونم و معرفی کنم از طریق انسان آشکار بشم بعضی این سخن رو اینجوری تقییم میکنن که مفهوم این نست که انسان خرق شده تا خدا رو بشناسد بله این فقط یک وجه از راضیه هست تو این نیست ولی مثلا فقط این نیست دو رو داره روی رو دیگه اینه که انسان قرار نیست خدا رو بشناسه فقط بلکه خدا قرار از انسان شناخت بشه شناخته بشه از وجود انسان آشکار بشه ببین ما در این حدیث صحبت بعد از عرف میکنیم از عرفات از عرفه از معرفی نه؟ چون من دست خدا رو معرفی کنم آه؟ جهان رو خط کردم و انسان رو مختص و این امر قرار دادم خب خلیفه خلیفه‌ام که ما در هم قرآن داریم هم در ستاره روایت اسلامی فيه داریم و حتی در تورات انجیل هم داریم آه؟ انسان به عنوان خلیفه خدا خب اصلا در اینجا این سخن این حدیث قدسی که انسان قرار است محل ظهور و عرفات خداوند باشه دقیقا هم مفهوم انسان به معنای الیف خداست. یعنی خدا قراری در جای انسان حضور پیدا کنه و انسان جای خدا قرار بگیره و اینکنین خداوند از انسان آشکار و معرفی بشه. خب این هم مفهومیست، شیعه هم مفهومیست، اسلامی هم مفهومیست، انجیلی هم مفهومیست، توراتی. خب دارم بگم همه این مذاهب ابراهیمی زنده این اصل رو قبول می‌کنند. این را قبول دارم به عنوان راز خلقت انسان اصلا فلسفه هستی و هستی شناسی در واقع باز گفت انسان شناسی و هستی شناسی اسلامی شیعی و مذهبی یعنی همین یعنی همین یعنی همین نقطه هستی شناسی یعنی شناخت خدا در هستی این هیچ مسئله دیگری ما نداریم از دیدگاه مذهب و معرفت دینی و اسلامی. خب بنابراین از دیدگاه ایمان دینی و معرفت دینی این قضیه کاملا سر شده است اصلا جای شک و بحث نداره حالا کسی که مطلقا به دین اعتقادی نداره خوب با او البته بحث دیگری باز کرد حالا ما اینجا از دیدگاه نقل و روایات این مسئله رو تخصیر کردیم حالا برای کافر برای کسی که هستن به دینی اعتقادی نداره مسلما به بحث عقلی دیگری باستی دیگر. کنید بنابراین از جنبه استدلال و علم نقلی برای کسی که که اعتقادی دینی دارن این بحث کاملا مسجله یعنی مسئله ظهور خداوند از جهان و مخصوصا انسان به عنوان منظور خداوند از خلقت و به عنوان فلسفه خلقت انسان و به معنای هستی شناسی این بحث کاملا روشنه مسئله ظهور خداوند از انسان یعنی واقعی امامت خب. بنابراین امامت یه چیزی نیست که در اسلام و در تشیع بر اولین بار بدعت گذاشته شده باشه کلیتر کرده باشه گوهره و جوهره معنویت، مذهب و ادیان الهی بوده است و اصلا چیز جدیدی نیست همینطور که در قرآن هم ما میبینیم که خداوند این مقام رو یعنی امامت رو به حضرت مسیح نسبت میده به همه قلول از نسبت میده و اولین کسی که به این مقام رسید حضرت ابراهیم بود با اون واقعی که نردش رو همه میدونیم خب بنابراین امامت گوهر وزاد و مقصود خلقته پس اصل اول باور دینیست امامت حالا چرا در اسلام این تبدیل به اصل اول شده آشکار شده و تا جایی که دیگه شده تمامیت دین یعنی تا قبل از ظهور اسلام یا اسلام محمدی امامت از اصول اولیه دین محسوب می شد و در اسلام اول و آخر دینه اساس دینه همام دینه درست به همین دلیل در قرآن این آیه که شای نزولش واقعی قدیر خم هست یعنی واقعی معرفی اولین امام هست افتوات برسه اینه که دین رو ما به شما کامل کردیم و نعمت رو به شما تمام کردیم این شای نزول امامت و دین کامل شد نه اینکه دین ناقص بود این ناقص نبود ولی در سلسله مراتب ظهور به نقطه رسید در اسلام درست برای همینه که فقط در معرفت اسلامی و در قرآن هست که امام اسم مشترک خدا و انسانه یا اون آیه معروف در با امام مبین است یعنی امام آشکار هست و بارها صحبت شده که می فرماد که کل جهانی هستی و هر آنچه که در آن هست متمرکز و متحسن هست در وجود امامی آشکار یعنی او قدب عالم امکان است به زبانی مروح یعنی تمام کائنات متوجه و متمرکز از اوست و از او برخواسته در حقیقت چرا برای کائنات برای او آفریده شده در حقیقت عالم هستی در واقع منظور رزاتی خودش رو در که نامش امامه میبینه میبینه که او منظور خودشه منظور جهانه منظور آدم وجوده رضا متمرکز و متحسن است در وجود او یه او علت وجوده امام حالا ممکن گفته بشه که برخی هم میگن که این اعتقاد اعتقاد خطرناکیه این تزبایان بیان ملحدانه بخیه متاسفانه متاسفانه بخشی به اسم شیعه و حتی روحانیت شیعه این طرز و رو اصلا الهاد و زندگیگری میدونن متاثفانه که این از بلایا و مفاسد و مسائب واقعا معرفت اسلامی و شیعی هست من نمیدونم کسایی که این اندیشه رو الهاد و زندگیگری میدونن اصلا اسلام و امامت رو چی میفهمن واقعاً چه این از امام داره. <تصفح> الو به ما دیگه میگن نه این درست است ولی به صلاح نیست که طور اوریان این سر و راز عالم وجود بیان بشه برای عوام. چرا برای اینکه از فردا همه ادای خدایی میکنن میگن با خداست. با ان الله واقعا مسئولین فقط مردم باعث جایزه بدن بانجایی که ادای خدایی باغان برای میکنن. بقول معروف حکایتی که همیشه میگن از سر قدیم یک نهای دو پیغمبری که راستن به پادشاه دادن که آقا یکی هستیش، داشتم میگم من پیغمبرم میگه بیاریدش اینجا میارنشون به میدن، و جایزه میدن و اینا اخیری تشویقش میکنن شو میگن چه کار بودی که یاریه شما میگه بابا جان راستن مرزون خدا پیغمبر رو این میده که به خدا پیغمبر فکر میکنه یه دادیغا و این خیلی خوبه این این صحبت اون بود الان در اصلی که انسان‌ها به شیطان بودن، به رسالت و پلیدی و کفر خودشون دارن افتخار میکنند به انکار خدا و رسول افتخار می‌کنن، کسی اگه ادعای خدای قمر و غاتو ادعای امام زمانی بکنه، واقعاً واسه اجازه داد. او هی زراین داره که مردم رو به یاد امام زمان میندازه که ای مثل امام زمانی واقعاً باشه، پاهاش رو زور حتی اون کذاب باشه واقعا واسه اش تایید بشه، حتی از کذبا مشه تایید بشه. ما می‌دونیم امروز مصحب شیطان پرستی را افتاده علمان در سطح جهان که در ایران اومده در تا چین عصری یک کاشی همه دای خدایی بکنه انتباقا این به حق ترین داییست که باستی بکنند <تصفح> به مسلحت هم صاحب کنیم این به مسلحت است. گرچه که این حقیقت برسر هست اینه که به مسلحت باشه یا نباشه. <تصفح> بنابراین ما میبینیم که این سیکس این باور، این رکن ایدولوژیک در همه معنویت و مذاهب بشری، در مذاهب ابراهیمی که اصل آشکار هست در قرآن تورا و انجیل در مذاهب و حکمت های شرقی همینطوره به مثل در آین دعو و لاوتسو ما در آنجا کاملا سخن میبینیم که سخن بر سر ظهور دعو از انسانه یا فنای انسان در دعوه دعو خود خداست ظهور داغو از انسان ببین این یکی از انگیقترین و بنیادی سرین و توحیدی سرین مذاهب و حکمت شرقی است در شرق دو همین حرفو میزنند صحبت بر سر دوزار پونست سالی پیش بوداییزم زنبودیزم همه اینا بیان همینه منطقه حالا صحبت بر سر جنگ اینب و ازدم و انگوره طرز بیان فرق میکنه حالا انحرافات و بدپرستیهایی که از این تو درآمده باش نداریم این در اسلام هم هست در اسلامم بدپرستی هنوز ادامه داره در هم ادامه داره این یه بحث دیگری است نیمیشه که سو سوء ای که دجالان در طول تاریخ از معارف تویدی کردن به این دلیل بیایم توکیز و انکار کنیم که اینکه کار عاقلانه نیستش که اگه اینطور باشه در اطراف پیامبر و علی و امامان ما چرا ادعای پیامبری امامت کردن؟ چادرن دیگه امیدواریم؟ از زمان خود پیغمبر اسلام بود چند نفر ادعای پیغمبری میکردن. خب حالا اینطوری بگیم همش صفتیه که پیغمبر بود چون پیغمبر بود دیگران ادعای پیغمبری کردن بعد با استندبابا انکار این کار کنیم یا امامت امام رو با استند کار کنیم چرا باعث شده که خیلی ادعای خدایی امامت بکنن این گندشو دارن. الان استدلال خیلی از کسایی که همه چیز رو مصلحتی نگاه می‌کنن اینجوری متأسفانه. ناگامین از منظر علوم نقلی دینی این بحث به مسجل و واضحه حالا یه اندکی هم در پرانتز بردازیم به حقانیت این بحث امامت رنگان سر خلقت برای اون جماعتی که به طرز خیلی ریاکارانه میخوان دین رو معنویت رو و توحید رو و محاط رو و محاط رو و مقدر رو, رو انکار کنند گرچه که حتی کمونیستان و نهیلیستان هم این این کارشون باقید این کار لفتی و جدلی و سیاسی بیشتره این حقیقتا هم کسیه همین در قلب خودشون و در تنهایی حالبت خودشون به مقده و معاده جهان باوردارن <تصفح> با افغانیت این قضیه برای کسایی که فقط لفتن و با بازی با کلمات میخوان مبدا و معاد رو به خلخاص انکار کنن یه چند تا اشاری بقدر میکنیم ای واکنید که فقط به علوم فنی و علوم یونانی و اروپایی فقط اختضا میکنند اگر هم صادقانه به این اختضا در علوم جدید امروزه اتفاقاً بسیار محکم مبدا جهان اثبات شده نه در فیزیک نظری در فیزیک تجربی و آزمایشگاهی در فیزیکه ریاضی اثبات شده نوگندگی سواد فیزیک دارن البته ما خیلی سواد نداریم در حد دیگه مطالعه داریم شنیدیم همه میدونن نظریه انفجار بزرگ یا بیگ بنگ دقیقاً اثباته. این همه است که جهان هستی از یک جای آغاز شده یعنی تصدیق معاد و میگن از یک نقطه بی نهایت کوچک که همان عدم است ها همه چیز آغاز شده در انفجار از ذات آدم جهان آغاز شده جهان از هیچ از عدم آورده شده و این اصل اول دینی است. این نظریه کاملا علمیه نظریه همتر بزرگ جزه دیگه اصول دین فیزیک جدید است. یا در فیزیک ذرگی نظریه اسپاس شده ضد ماده یا پوزیترون ها خود همین باز نشون میده که آدم اصلی در ذات خودش از عدم است. و هیچ معنی دیگه نمیده یعنی از عدم آقاس شده یعنی چی جهان خلق شده یعنی چی؟ یعنی خالق داره وقتی جهان یک دمانی نبوده و به بوده یعنی چی از نبود که بود بر نمیخیزه که از هیچ که چیزی بدید نمیاد الا اینکه خالقی بوده باشه این رو عقل کودکم تاثیر میکنه اگر بخواد با عقل خودش صادق باشه و همین است که ما در معرفت اسلامی داریم که عقل مقدم است بر دین و فقط آقلان بر دین وارد می شون این یک نشانه عقل است بشرتی که انسان با عقل خودش جدال نکنه خب از نظریه ماده هم اثبات دیگری از این که جهان از عدم ها شده است از عدم ها شده است یعنی چی؟ یعنی خالق دارد دیگه؟ یعنی خالق دارد یعنی الان توی این اتاق فرض کن این تلویزیون نبود تند من ایش یک نفر آورده هستین تلویزیون رو آورنده داریم دیگه خودش که نمیتونه اومده باشه درسته؟ خب پس خالق وجود داره اینم دو و مسئله سوم مسئله عمر پروتونی که کاملا اندازگیری شده عمر پروتونه عمر ایل... هستی عمر مادیت جهان عمر داره یعنی چی؟ یعنی آغاز داره یعنی از جای شروع شده یعنی مبدع داره همونطور که مشخص کرد شده یعنی معادش هم مشخص کردند. منطور بود رقمش حالا میگن در بتوانی نموندارم سی میزین سال نوری یا هرچقدر چقدر اون دارند. ولی در اینکه جهان ماده و طبیعت و کائنات عمر داره شکی نیست از لحاظ علوم فیزیک کهانی جدید یا نظریه فضای منهنی در نسبه خودش اثبات دیگری بزر این امر که جهان محدود است حد داره جهان منحنی بودن فضا خودش داره باره محدود بودن فضا است که جهان محدود است یعنی این عالم هستی مادی و طبیعی محدود است این اسپادی به این عمر هست که این عالم کائنات که در واقع در فرهنگ قرآنی دنیا نامیده میشه یا آسمان اول نامیده میشه این حد داره نه اینکه بعد از اون چی نیست بعد از اون هفت شش آسمان دیگر میز هست ببی این هم ثابت شده است فضای منهنی جزء اصول دین فیزیک جدید هستش یا نظریه معروف این استفن هاکینگ معروف که یک افلیج نابقهای هستش که در این علوم تقیقات زیادی کرده یا نظریه معروف به عمر زمان هم ثابت کننده اینه که زمان عمر داره زمان در این دنیا عمر داره خب یعنی پس مبدال موادی داره همه ایناییی چی؟ یعنی خواهده وجود داره این هم از دیدگاه عقل مادگی و فنی و عقل ریاضیاتی حالا میشه آدم خودش رو برای دیگه بخواد انقدر با دین یعنی باعلن خودش ادابت داشته باشه که میخواد نیهیلیست بشه خب این اختیار داره دیگه من منکر نیهیلیسم نیست یعنی من منکر وجودم یعنی میگم که این آقا این خیال مازه اصلا هیچ وجود نداره ها همین این نیهیلیست صرفا سربالاست خب اون آقا نیهیلیست آقا همین تبهار وجود نداره خب وجود نداره راست نمیگه شما خب این که دیگه وجود نداره کیه اونکه وجود داره که این خودش هست دیگه تو وقتی شما میگی اون کیه نیهیلیسم این نیستنگار یعنی معتقد اینکه اصلاً هیچ چیزی اصلا وجود نداره نیست اه؟ اینا چیه؟ اینا توهمه، خیوالات. هرچند چند خود توهم چیه؟ خود توهم چیزی هست بس. پس همه اینا پس خودش بتولاته اندیشه هستش که کیجایدا خیلی طرفدار پیدا کرده. خب آقای نیهیلیست تو که میگه جهان نیست تو خودت که هستی که اه؟ وگرنه خود خودی نیستی که نمیتونه ثابت کنی که نیست. چیزی که هست باید ثابت کنه که نیست دیگه پس این حرف هم حرفیست محمد خب پیش از این در این مورد وقتا شبه بسیار زیاده بر اساس همین علوم عقلی و مادی و طبیعی و فیزیکی هداران قانون وجود داره که ثابت میکنه که جهان مخلوق است و خالق دارد خب پیش از در این مورد صحبت نمیکنیم. ما فقط صرف اصفارو می چون تصمیم داریم که انشالله تو این جلسه به طور مختصر و مفید مبانی تشیع و اسلام رو ما ایدولوژیکی کنیم بیان ایدولوژیک از ارکانش لغل داشته باشیم یعنی همون نیازی مبرمه که جامعه ما و انقلاب ما از شام شب بیشتر بهش محتاجه ولی هیچکس به این فکر نیست متاسفم و تمام بدبختیهای های جامعه ما هم حاصل فقدان ایدولوژیه و اوائل انگلاب می گفتن آقا ما قرآن داریم قرآن کتاب ایدولوژی ما منیفست ماست خب در اما اصابه شد که قرآن نتونست منیفست ما بشه قرآن نیازمنده به کسی یا کسانی بود که اون رو بیان به زمان کنن این ایدولوژی کنن برای همین بود که تمام مسائل جامعه ما فقط تحتشاه های شرایط جهانی بود به پیشرفت و در عمل ما شدیم وی جامعه دوز دوبزه سوبزه شدیم باز نیازمند ایدولوژی هستیم و ایشالله قصد داریم ما علفه های ایدولوژی شیعه و اسلامی رو تا حدود یاد دقیقه ترخیه بکنیم خب سوال این بود که چرا امامت در اسلام تبدیل به اصل اول و آخر شد خب این هم باز از دو منشأ میشه. مورد بس قرارتا یکی از منشأی کتی که درد به دین باور داره یکی از منشه که که از, از, از, از, از, از, از دیگه خب دیدگاه کسانی که باوریدینی دارند خب مفهوم یکیش اینه یکی این داستان ختم نبوت در اسلام هست خب چرا نبوت ختم شد به نظرت بحث شده دلیل عقلی علمی اینکه چرا نوویت خست شد میگن نوویت خست شد برای اینکه خدا خواست کنه اینکه نشد دلیل عقلی نوویت شد برای اینکه به کمال رسید برای همین محمد اکمل انبیاه الهی. خب کمال و یعنی چی ما اگر نفهمیم نووت یعنی چی مسلمان کمالشن نمیتونیم بفهمیم نووتی دیگه محمدی یکی از علل این خط و یعنی اگر مراج محمدی فهم نشه خط و نووت یک شعار توخالی است. همینطور که برای اکثر ما توخالی هست و مدبختانه اینه که هر کسی هم بخواد به اماد خط و نووت به از آخره دلغت نمی کنه چرا؟ برای دلایل میاره که این دلایل رو خیلی ها قبول ندارن لذا این میشه بدعت میشه و ارتداد میشه ببینید ما گفتیم دین یعنی راهی که از اون راه خداوند آشکار میشه این یعنی دین یگانه این دین دو مرحله داره لازمه تکامل و تکوین داره میشه مرحله نوابت و مرحله امامت امامت که کسین ذاتی دینه مقصود دینه برای همین دین ناگهان به امامت رسید بالا امامت خامیر شد و از دین جز امامت هیچ امروز باقی نیست بالا همین که امروزه بی امام واقعا کافره نه؟ از که که پیامبر گفته و همه امامان ما تکرار کردن که بی امام کافر است بی امام کافر یعنی یعنی بی‌دین است یعنی بی وقتی یعنی امامات بابا ناراضی نه با باور داشته باشه ما الان یه دین سرانبندیی خودفریبان باشه چه دینی میدونه باشه ام امام تو گفتیم یعنی چی؟ یعنی خدا در جهان هستی. این یعنی امام. خب باز نمی واسه به امام برسید دیگه چون که هدف همین بود. خب در اسلام به امام رسید. نبی یعنی با خبر مخبر کسی که از خدا خبر داره. همه انبیا سلسله مراتب خبرگیری از خدا بودن. از خدا خبر می آوردن برای مردم خبرابر خدا بودم رسول یعنی همین خب پس این ارسه که خداوند به ظهور نرسیده لذا اخبارش میفرسته برای بشر در ارسه ظهور نیست لذا خبرش میاد این خبر در وجود محمد تبدیل شد به اثر یعنی چی؟ یعنی در میراج محمد دیدار کرد با منشای خبر با خالق دیدار کرد با آیات الكبرای خداوند با بزرگترین نشانه خدا دیدار کرد و پس به نقطه رسید نبوت ها چه دیداری هرگز قبلا رخ نداده بود خب این دیدار سرآغاز امامت بستر و زمینه امامت هستش این دیدار باز خود این میراج علت ختم نبوت اگر ما از منشأ مفهوم میراج محمدی نتونیم ختم نبوت رو فهم کنیم هر کسی دوی پیغامبری کنه و دین جدیدی بیاره اسلام رو فسخ و نسخ کنه ما هیچ حجتی نداریم برو بیاریم واقعا نداریم برو بید. مگر اینکه خط نبوت رو فهم کنیم و خط نبوت رو جز در واقعی مراج محمدی نمیشه فهم کرد است خط نوابط رو نوابط خست شده خبر خست شد چرا؟ خب این که اینکه ما اگر منتظر کسی بودیم که بیاد تا الان نامه می پیامبران پیانبران نامه رسانهای خدا برای بشر بودن نامه هاشون دیگه ازا کتاب یعنی نامه ما میگم نامه این کتاب که میگیم کتاب تورات، قرآن انجیز ها؟ کتاب این ما به فلان پیامبر کتاب دادیم ها؟ یعنی نامه دادیم که باید مردم وقتی که کسی خودش بر عرصه وارد شد دیگه نه نامه‌ای لازمه نه نامه رسانی لازمه ها؟ به این میگن ختم نووت که سراغاز امامت سراغاز امامت است در میراجنامه پیانبرستان ما داریم متاسبان میراجنامه نظر بنده در آخر و زمان در اصلی که ما هستیم و در بران حولیت میراجنامه و مجموعه حوادیث قدسی به نظر من حیات بخشتر واجبتر و مهمتر از خود بران است میراجنامه در واقع بزرگترین سند فهم قرآن و تعمق بسیاری از آیات و مفاهیم قرآنی هست. که متاسفانه اصلا مفقود و متروکه این میراثونه. انگيز بر منبری میرابی چایما هر از این میراثونه و عاجز میراب متاسفانه نمیشنلیم. چرا نمیشنلیم؟ برای اینکه سخن همش بسطره علیست و متاسفانه انقدر همین اتحادات ما سیاسی و دیپلماتیک شده میگویند آقا این حرفا نکنید. که ها بول نگیرم گذک دست وهابیا ها ندید عجب حرفیه تا به ما نگن ما غالیه هستیم زندیخ هستیم بود هستیم. خیلی جالبه واقعا حجت ما شقیه ترین دشمنانی شیه هستند. چون ما با ما چنین تا پس ما باستی اعتقاداتمون رو پس بگیریم وگرنه نه نمتهم میشیم با آنچه گناب ما رو متهم میکنن و این خیلی جالبه که متأسفانه بسیاری از روحانی ما و برخیفت از مراجع حتی ها چنین دلایلی میارن که این حرفار نزنید که ما متهم نشیم به قالیه گذی ببینید حدیث مراج رو شیعه که قبول باشه اصلا شیعه نیست و عجیب این که این حدیث مراج رو تمام علمای های بزرگه از سنت هم قبول دارن و این خیلی جالبه و این خیلی عجیبه احادیس مراج اثقات امامت علیست. در هیچ سخن و حدیثی ما نمیتونیم مفهوم امامت رو اینقدر واضح و لغت استخراج کنیم که از احادیس مراج میتونیم استخراج کنیم و خوشبختانه این نیز از واقعا معجزات دین محمده که احادیس مراج رو اکثر علمای فرق سنی هم قبول دارن و این خیلی جالب ببینید یکی از سخنان معروف در این مراج محمدی اینه که خداوند در میراجش در آن دیدارش در ست رسول منتها می که ای محمد می این محمد آیا می دم این به بردم که هیچ پهانبری رو نایی برده بودم می فرماد نه می گه علی برای اینکه تو بفهمی علی کیه اگه نبود خاطر علی تو الان اینجا نبودی این, این. خب یعنی امام دیگه ها؟ یعنی برای امامت تو رو بردم اینجا <تصح> <تصح> یعنی اگر این میراج روخ ن و بعد از پیانبار از میشه که نسبت من و تو چیه؟ پیانبار میفرماد که تو خالدی، و من بندهی تو هم تو رزاقی و من ساجد تو هم. تو مسجودی تو محبوبی تو معبودی و بعد خداوند میفرماد که ای محمد بدان که نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی یعنی همونطور که من محبوب تو هم، محبود تو هم و, تو و مراد تو هم و تو مرید منی و عابد منی من با علی اینجوری یعنی علی محبوب منه و من مرید علی هم مخلص علی هم. درست به هم دلیل برو به با همه بگو هرکس علی رو دوست داشته باشه من دوست داره هرکی علی رو دشمن داشته باشه با من دشمنه و همون حادیث معروف ولایت علی که ارکت بنی ولایت وارد داشته بر بهشت وارد شده او به همین این اینه خب این بسیار بحث داره ما تونه به در این مورد بحث زیاد کردیم اینجا جاش نیست که ما همین توضیح بدیم که موریدی خداوند نسبت به علی یعنی نسبت به امام یعنی چی حصول این بسیار جای بحث داره بسیار بحث دقیق و لطیف و عارفانه و آشغانه این بحث بحث عشق بحث بالاقایی نیست که خدا برتر از علیه بلی از یه برتر از علیه اصلا انسان برتر از خداست درست به دلیل این آیه مبارک که فتبارک الله اصانال خالقین مفهوم لغوی این فتبارک الله و خالقین واضحه مفهوم لغویش یعنی پس افزون آمد خداوند از بابت بهترین موجودی که خلق کرده بود که آدم بود یعنی خدا برکت یافت از بابت این مخلوق خودش خلیفا فریده بود یعنی الله در خلقت آدم که نس آدم همون امامت بود الله اکبر شد در واقع الله اکبر محصول فهم امامت امامت همون آدمیت اما اینو بدونیم بلا همینه که مثلا ما امام حسین رو همه امام ما خودشون رو وارث آدم میدونن یعنی که ما آدمیم بروی زمین و جز اونها آدم نیستن اینا آدمی هستن. و همه باستی از باستید نتباییت کنند تا چی بشن تا آدم بشن تا آدم بشن خوب باست انسان که موجودی که خدا خداوند اصلا درک مقام الرحم الرحیم و عشق و خداوند در اینجاست که فهم میشه که خداوند مخلوق خودش رو از خودش برتر قرار داده و مرید مخلوق خودش رو. و مرید مخلوق خودش شده اسم خداوند جای اینجاست یعنی خداوند مخلوق خودش رو انسان رو اون گوهره امامت رو و امام رو در نزد خودش از خودش عرجه تر قرار داده در نزد خدا البته آ اینطوره نگه بنده بگه که من بفتر از خدام ببین این بحث عشق این بحث منطق و فلسفه نیست این خداشناسی کلاسیک و فلسفی نیست این خدا شناسی است موضوع شنو سیر و این فهم فهم این فهم مربوط به درک عشق عرفانی میشه این ما فقط تیتوار سر کردیم که جای تفکر باشه ما در این باب البته صحبت کردیم و توی نوشتهامون مطلب هست این نکته از این باب گفتیم که بفهمیم امامت یعنی چی نوبت خط شده یعنی رابطه خدا با مخلوق با بندش خط شد یعنی دایره رحمت بسته شد دیگه ببین ما اگر امامت رو به این مفهومی که گفتیم نفهمیم خط و رو جز به قضا به الهی نسبت به بشر نمیتونه بفهمیم بله دیگه اعتباد رابطه و رابطه خدا و با مخلوق خودش قصد شد دیگه یه کسی نیست در خدا خبر بیاره اتفاق برستری افتاد به بود که نبوت تبدیل به امامت و ولایت وجودی شد یعنی چه؟ یعنی خبر تبدیل به اثر شد یعنی ما در عرصه ظهور هستیم برای همین است که دین محمد دین آخر و زمانه برای همین است که ما چارده که در روز قیامت تصدیم قیامت هزار ساله که قرآن ازش شرف می قیامت ما میدونیم یعنی لقا الله دیگه آه؟ عرصه ظهور خدا از انسان از انسان خب حالا بهتر میشه فهمی که چرا پیان بر فهمد زین پس زین یعنی در دوران خط و فقط ره روانه. معرفت نفس یعنی خودشناسی یعنی عرفان عملی هستند که به حقایق دین من میرسن. باز دستقابل میشه. حقایق دین ما گل فلسفه‌ی حقایق دین محمد چیه؟ و امامت. درسته؟ یعنی فقط کسانی که در عرفان عملی هستند در معرفت نفس هستند به امامت میرسن. پس میفهمم که خطابت اوعد و امامت یعنی چی؟ این سخن رو هم شیع و سنی قبول داری این حدیث رو. که فقط رهروان خودشناسی هم که پس در آخراز زمان به حقائق دیر محمد می دستن یعنی می مسلمان باشن خدا شناس می باشن میتونن تونن باشن تا این صورت مشکل یا سخن معروفی گمه می که خود پیامبر فرمودن همه امام هم کردن و من عرف نفسه فقط عرف ربه تاکی خود را شناخت ترجمه که خدا را شناخت حالا که نه خیلی تخصصی تره عرف رب به از خود را شناخت رب به شناخت الله گفته نشده معرفت الله گفته نشده ها اگه خود شناخت رب به شناخت رب رب مربی امامش شده ما میدونیم که رب خداوند بله رب از اسمای خداوند در این شکل است. رب برقیه ولی در ارسی خطر نووت و آخر از زمان و قیامت رب و روبیت هم آشکار میشه در انسان و اون از وجود امامه بنابراین امام ها میرسیم به موزده امام شناسیم در واقع این هر چیزی که یکی از مکررترین این از زبان عمیت هاره هست خودشناسی رب شناسی اگه خودشناخ ربششناخ رب نه امامش روشناخ بنابراین از طریق خودشناسی میشه به امام رسید و امام رو پیدا کرد ولا غیر ما در یه جای دیگه بحث کردیم در نوشت آمونم گفتیم که از طریق شناسنامه نمیشه امام رو پیدا کرد که آقا شما فرزند امام حسنی عسکری هستی؟ خب بلی هستم خب پلا بیه ثابت کن که هستی؟ چه تو نمیشون کرد؟ هرگز نیگه نمیشون کرد؟ هر نیگه کرد؟ صدها روایت هست؟ که تابوت موسا باوست؟ زلفقر علی باوست؟ فضا کی میتونه اصلا زلفقر علی ثابت خونه؟ که این زلفقر علی هست واقعا؟ ها؟ مقاتم محمدی باوست؟ نه واقعا چه تو نمیشون کرد؟ این فیلمو دیدیم دیگه شمشیر می‌سازن این زرد باق. خب کی می‌تونه صحبت کنه که این نا واقعاً با کدوم علم؟ ها احتمالاً علم باستان‌شناسی واس پیاد مثلا ما بفهمیم که این شمشیر مال چوتا گردی بیجه یا قد بشه یا باز این این دیگه باستان‌شناسی مونده معرفت نیست، معنویات نیست. اینو باستان‌شناسیو دین‌شناسیو اصول‌شناسیو احتمالاً دی‌ان‌ای امام زمانو و بیاریم. یه جایی می‌گفهمیم که فرزند امام حسین اسدی هست نیست. این بس چه بحث موسیقی و مهملی میشه. برای اینکه واقعا موسیقی مهمه، هست واقعا نه هر کسی میتونه که من امام زمانم یه فرقه درست کنه. سعی تا درست کردم. بلکه فرقه درست شد، اسلام رو فاطرشو بخونند. همون طور که شده دیگه از این فرقه ها کم نیستن که امروز اصلا هر روز هر روز یکی درست میشه. همین اخیرا در همین قوم خودمون یه اخوندی همین اداره کرد. و اثر کتابش رو کرد. گفت از این بار قبضه جمکرانه تو روز بعدش هم گفت اسلام هم دیگه امرش تموم شده منسوخ هست اسلام پای می سود حالا کی می کنه ببینید از اونجای که ملاک ها غیر معرفتی هم غیر اسلامی هم غیر ارفانی غیر اقلانی هستن اینقدر میشه معتون مدون داد و اینقدر دجال ها رونق دارن و دخونشون پرباره چرا برای کمی همین ها حاصل فقدان معرفت و امامشناسی ما امامشناسی نداریم که این همه فساد و فتنه است فقدان امامشناسی یک موجب بیدینی ماست دو موجب پیداش زجال ها و فرقه های است <تصفح> پس هرکت خود شناخت امام امامش نه. ناخد نباقی درسایی که تو تاریخ اومده نمیشه امام داشت ناخد هزار نمیشه شناخ. در این باب ما قبلا صحبت کردیم در اینجا مسائل رو تکرار نمی کنیم روایاتی که در مورد ظهور امام زمان هست درنجو البته این, این بحث رو ما قبلا کردیم که امامت رو اگر علم الدرجات رو ندانیم امامت رو نمیفهمیم امام فقط اون امام مطلق و فرزند مطلق و فرزند امامتاسگری نیست او ظهور جهانی و یه امامت است که ظهور قهاری خداوند در واقع خدا در ظهور قهرقضا خداست برای همین در اون ظهور نهایی در اونجا هدایت نیست اون رحمت نیست اون قضره اون قضره برای همین دو بایده که بشریت در روایته که خونه ریخته میشه به دقیقا تمام خیابان ها و شهرها خون میره و مابقی هم از ترس تسلیم ما میشن ولی این هدایت الهی نیست دیگه این عطل قهارانه خداست برای همین اون ظهور نهایی ظهور عطل قهاره رحمت نیست رحمت امام و هدایت و نور امام و محبت امام که حقیقت رستگاری انسان هست در عرصه غیبت امامه که انسان از طریق خودشناسی معرفت و عرفان میتونه امامش رو پیدا کنه این بست رو که انتقال نمیکنیم در قرآن واضح داریم ما که امام مفهوم بسیار وسیعتر داره فقط مهدی موجود نیست در دوران غیبت ها پس انسان ها چیه؟ ما داریم میگویم چه خط نوود که بعد از یکی خورده سال منجر به ختم در واقع با گفت ولایت در جامعه منجر شد و عصر قیبت شد باز بشر حالا دیگه نه پیغمبر داره نه امام داره اینکه بدتر شد که ای بابا قرآن میگه که آقا ما سلطن مستقیم را آوردیم اسلام را آوردیم تا تمام سختیه را آسان کنیم و و و ما کامل کردیم. کو این کامل کمال نعمت و رحمت کو کجاست نوبت که خط امامم به غایب تکلیف چیست آه ما اگه اینو نفهمیم نه اسلام فهمیدیم نه امامت فهمیدیم نه تشاییو فهمیدیم همینطور که واقعا هم نفهمیدیم اینقدر بس پیشنیم دعایی فرش بخونیم آه تا جنوبون دره دیگه پدر من پدران من یا خود من دیگران خب نمام وقتی زور کرد که اونم میگن چه سالی بیشتر حکومت نمیکنه بعد تازه تزه شهیدش میکنن خوب بعد انسانا قبل و بعدش تکیلشون چی همه بیامامهم دیگه یعن کافر مردن دیگه نه ما در سخن ائمه اینکه گفته میشه بیمام کافر است منظور اینکه من باور داشته باشم که امام زمانی هست این که نیست نخر امام حی ما در اصول کافی داریم ما در هادیث قدسی ما مکرر داریم از زبان ائمه که سوال میشه که اینکه گفته شده که به امام کافر است آیه همون باور به امام قایبه میخو نخیر امام های امام راس پیدا کوری زنده شو که تات ربوبیتد قرار بگیری اورو رب خودت قرار بدی و هدایت یعن این و ما در دا قرآن داریم در واقع این مخاطب این آیه در واقع شیعیان هستن که چندین مورد تکرار شده به شکلهای مختلف یکیش تو ذهنم هست این که که بگید خدایا ما را از امامان قرار بده ببین مخاطب همه مردمانه که مؤمنان متقین بگید خدایا ما را از امامان قرار بده ما را امام کن بگید از امامان قرار بده ببین بنابراین خیلی حرفا واقعا این دیگه و ببین باز فقط سخن بر سر امام مهدی نیست پس هر مؤمنی میتونه در مقام امامت قرار بگیره بله سلسله مراتب امامت همونطور که نوتم سلسله مراتب داره امامتم سلسله مراتب داره این اگر درک نشه نه امامان، نه تشیع هیچی درک نشده و جز ضلالت و گمراهی هیچ چیز دیگهی اون نمیاد باور به اینکه امام قایبی هست خواهد کرد این به خودی خود جز یأس رخفت تسلیم و بدبختی و خفت و صدن هیچ خاصیت دیگه نداشته همینطور که واقعا هم نداشته نگاه کنید شیعه چقدر قوم بدبختی بوده آه؟ انتظار این شکلی بدبختی چی نمیاره شما تا زور کنه نجاتت بذاری حجب نجات حرفیه مسئله پس اینه که یک مؤمن بره دنبال امامش و امامم اگر بیاد بغدش بیشینه او او را نخواهد شناخت بلکه او را خواهد کشت انسان اعلی معرفت نفس میتونه امامش رو پیدا کنه ما این رو در متأخرین داریم الام تبا تبایی ای یکی از کسایی هستش که با صدای بلند و پوسکنده گفته که امامت ولایت وجودی مقامی است که هر انسانی از طریق معرفت نفس میتواند بهش برسد و این سریعترین و کوتایترین راه هدایت است در کتابی به ولایتنامش نامش هر کسی میتواند برسد و باید برسد این مستاق همون بیان پیمبر که ینپس فقط رهروان معرفت نفسند که به حقایق دین من میرسند و رستگار میشند پس آمد چیزی که در ب بش رسید انسان به میزان می خودش رو میشناسه در خودش نقب میزنه و از وادی سفات به سمت ذات حرکت میکنه در واقع داره به سمت خدا خودش داره میره و به میزانی که سالک این راه هست امامی هم در گیرون پیدا می کنه با،, با همون دریجه از امامتش ها، همون مرتبه از امام را در گیرون میدان می کنه به شردی که امامت رو ما درک کنیم که در رأس قلل این امامت البته که امام دوازدهم ما اماما قرار داریم و ما بقیه امام همه تحت ولایت و امامت او قرار دارن و از نور او تغذیر می کنه.